بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليث ثم الجندعي أن آباء أيوب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء وسيد المرسلين وآل هٰٓي وصحبه أجمعين أما بعد سيد هاشتيمين حديث هذا حديث صحيح مفرد من بخاري حديث أبي يبن ساري رضي الله عنه كم جاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودا لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاثة ليال كدشتم در حديث قبلي حلال سني حرامه بار المسلماني برادر خودش راه بيشترس شوال نوز پاجر بکنه باش قطع رابطه بکنه ازش روی گردان بشه حرام لایحل حرامه, لا حرامه. مرتکب حرام نشید یلتقیان با همدیگه ملاقات میکنن فیسد هذا ویسد هذا این ازین روی گردانه اونم از اون روی گردانه و خیرهما الذي يبدا بالسلام بهترین اونها کسی که سلام رو آغاز میکنه صلح میکنه حالا ان شاء الله قاعده مد فضیلت اون کسی که قدم بر میداره به قصد اصلاح و بازگشت اون ارتباط و اون علاقه‌ای که به همدیگه دیگه قبلا داشتن و اون ارتباط رو دوباره اون صمیمیت رو دوباره ایجاد می‌کنه و اون خووت و برادری رو دوباره برمیگردونه با سلام کردن چنانچه امام مالک و شافعی میگن با سلام کردن اون روی گردانی خاتمه شاید تو دل دی تهش چیزی بمونه ولی کن تلاش کن با همون سلام کردنت با همون احوال پرسید تا اینکه اون کینه اون کدورت اون بغض که تو دلت نسبت به برادرت خنثا بشه کمرنگ بشه خوبی ها بدی ها از بمی بره و با پاکش میکنه بله قال المؤلف رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا نهومین حدیث از حدیث صحیحه مفرد حدیث ابوهریره رضی الله عنه وغفر الله له ولأمه از رسول الله صلی الله علیه وسلم کمی که لا تباغضوا از رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام نقل میکنه که میفرماید لا تباغضوا و لا تنافسوا تباغض رو داشیم فغذا تنافس رو که قبلا نداشتیم اینجا داریم ولا لا تنافس و منافسه مسابقه هست با هم دیگه مسابقه ندید نوع مسابقه چیه معارضته به خاطر دنیا همدیگر رو ننجونید به خاطر دنیا با همدیگر نجنگید این منافسه هست ولت تنفس. جنگ با همدیگر دارن بر سر دنیا به خاطر مال دنیا و کون عباد الله اللهی برادر هم دیگه باشید بندگانی لله برای الله که همدیگر را دوست دارن برادر همدیگرن یک تنن یک پدر مادر دارن هم از یک پدر مادری همه از آدم و هوایی همه از یک تنافریده شدیم چرا باغز هم دیگه داشته باشیم؟ ما یکی که از یک تنیم از یک جانیم همدیگه رو دوست داشته باشیم در حق همدیگر رحمت داشته باشیم مه خوبی نیکی در حق همدی داشته باشیم. خیررخوا هم دیگه باشیم نهشرخواه اون ارتباط را سمی کنیم قویش کنیم تا شیطان میان ما نیاد چطور شیطان میان فرزندان یعقوب اومد بر سر چی بود؟ خیلی چیز بزرگی بود که اوننا حست وزی و برادرشون یوسف. نه یخلوله نه وجوابی نه بریم یوسف رو تو چه ها بندازیم خاطر اینکه صورت پدرمون به طرف ما یعنی توجه پدر به طرف ما باشه بیشتر توجه به یوسف داره فقط توجه ها محبته پدر چون محبت یوسف داره پس یوسف ازش بگیریم بس همین نه بهترین ماشین براش خریده نه بهترین منزل براش درست کرده یوسف بچه هست شیطان چطور اونا رو بس ا اونها مبتلا به این بیماری شدن من و تو مبتلا نمیشیم از باب اولا اونها فرزندان کی بودن فرزندان کریم ابن کریم ابن خلیل الله فرزندان یعقوب فرزند اسحاق فرزند ابراهیم خلیل الرحمن بودن فرزندان پیامبرن این چین شیطان گمراهشون میکنه من و تو از باب اولا یاد بگیرم از یوسف علیه الصلاه و السلام قبل از اینکه برادرانش طلب بخشش بکنن رو به میکنه با وجود که تو چاش انداختن و تو صورتش بهش گفتن ان یسرق فقط سرق اخو له من قبل دوزده یوسف اگر بنیامین دوزی کرده یوسف از قبل دوز بوده وقتی که او را میشناسن و خودشو معرفی میکنه از الله قبل از او بخواهند اونا طلب بخشش و آمرزش از الله براشو میکنه یغفر الله لک الله شما را ببخشه این کرمه وقتی که رسول الله صلی الله علیه قبلا یاد شدن از کریمترین کریمترین مردم کیه گفت یوسف کرمه این حقیقت کرمه بخشش بعدو عزمیده من بعد ان نازغه شیطان بینی و بین اخوات شیطان بود که اومده بود بین من ای پدر اختلاف انداخته بود مقصر نیستن منامتشون نمیکنه لا تفریب علیکم اليوم منامتی انکی بر شما ها نیست این اخوت این چیزی که الله از ما میخواد الله این سوره رو اوورده و این شکوه زیبایی اخوات و برادری رو اینجا یاد میکنه و بینی شیطان رو به زمین مالیدن که یاد بگیریم چطور متلاحم بشیم یک پارچه و یک دست بشیم یک دل و هم دل بشیم کون عباد الله اخواننا قال المؤلف رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمر عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما توادثنان في الله جل وعز أو في الإسلام فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما سی سد حدیث از حدیث صحیح در مفرد حدیث انس بن مالک رضی الله عنه از رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم که فرمیان ما تواد اثنان فی الله دو نفر نیستن که با هم دیگر ایجاد مبدد میکنن بین خودشون با هم ما تواد اثنان فی الله ایجاد مبدد ایجاد محبت ایجاد و و برادری فی الله برادریشون لله جل و عز او فی الاسلام فیفررقا بین هما ما توده اثنان ف الله جل و عزّ فیفررقا بین هما اول ذنب یحدثه آد هما اون چیزی که سبب میشه اون دو نفری که خوّاتشون برادریشون لالله بوده اون چیزی که سبب تفرقشون میشه جداییشون و رویگردانیش نزدیکه اولین گناهی که یکی از آنها انجام میده اولین گناهی که یک از اونها انجام میده سبب اون جدایی میشه سبب اون بغض کودرت و کی نمیشه طاعت و عبادت و التزام و استقامت بر شریعت و خوبت و برادری میاره گناه و معصیت از شعومش جدایی میاره ستیز میاره دشمنی و کدورت میاره اگر دیدی اختلاف افتاده بین تو و برادران و خواهرانت خودتو مقصر بدون خودتو رو متهم بکنید حتما گناهی معصیتی مرتکب شدیم که بین ما این کدورته به وجود اومده خودمون رو مقصر بکنیم چونچه اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما یادآوری میکنه بترسید از گناه تحذیر از گناه و بترسیم از اینکه اخوتی که الله عزمن خاصه اون اخوته اون همدلی و همدستگی از بین بره کون عباد الله اخوان الله من میخواد که ما برادر همدیگه باشیم اون اخوتی که الله عزمن خاصه تبدیل بشه به دشمنی و کدورت و جدایی بر باشیم بس طاعت و عبادت برکت داره و گناه و معصیت بدبیاری داره از شوامه گناه، از بد بیاریش جدااییه بین دوستدارانه آنهايی که فلّه وللّه همدیگرا دوستدارند. قال المؤلف رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد قال قالت معاذت سمعت هشام ابن عامر الانصاري ابن عم أنس بن مالك رضي الله عنه وكان قتل أبوه يوم أحد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما وإن أولهما في أن يكون كفارة عنه سبقه بالفيء وإن ماتا على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا وإن سلم عليه أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان 611 حدیث از حدیث صحیح احمد مفرد من بخاری از شامن عمار انصاری اموزاده انس بن مالک رضی الله عنه پدرش در جنگ احوک به شهادت رسیده پدر هشام نعمر انصاری میگوید که از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدند رضی الله عنهما شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند لا یحل لمسلم ان یصارم مسلما فوق ثلاث حلال نیست یعنی حرام بر مسلمانی که رویگردان بشه از مسلمان دیگر بیشتر از سروس فَإِنَّهُمَا نَاكِبَنِ عَنِ الْحَقِ ناکب منحرفه مایله هر دو نفرشون از حق رویگردان شدن با رویگردانیشون از هم دیگه از حق رویگردان شدن منحرف شدن مَادَمَا عَلَسْرَامِهِمَا مادامی که اونها همچنان از هم دیگر رویگردانن از حقم هم رویگردانن و این اولهما فیعا یکونو کفارتا عنه سبقهو بالفی و اولهما توبتن. این اولهما فیعا یعنی توبتا اولین کسی از اینا که توبه میکنه و شروع میکنه به صلح کردن و سلام میکنه برای ایجاد صلح این شخص آغاز کردن و ابتدای این مصالحه را اون شخصی که اون مصالحه را آغاز میکنه و پیشتاز میشه در این صلح اون گناهی که مرتکب شدن در اون جدایی در اون روی گردانی اون کسی که مصالحه را آغاز میکنه اون گناهش کفاره میشه با این مصالحهش با این توباش الا من و واصلح جو اصلاحه داره اصلاح میکنه این اصلاحش این عملش توبشه گناهی مرتکب شده روی گردان شده اومده اون گناهی را اصلاح بکنه اون کسی که میاد اصلاح میکنه گناهش بخشیده میشه این فضیلت چیه فضیلت ابتدا و آغاز کردن مصالحه اگر قهری جدایی بین ما پیش اومد ایجاد شد و در روایتی نظم و محمد و اولهما فیعا یکونو سبخ و بلفی کفارتن له اون کسی که یعنی سبخت میگیره در مصالحه بعد از مقاطعه کفاره میشه بر اون مقاطعهی که رخ داده در اون گردانی که پیش اومده و این ماته علی سرام این دیگه بعیده خوش داره اگر مردن یا یکی از اونها مرد در اون رویگردانی در اون قهر لم يدخلا الجنه جميعا ابدا هر دو وارد بهش نمیشن عقوبت سخته یا آسانه یه قوّت سخت یأسونه خیلی سخته از بهش محروم بشی به خاطر رویگردانیت از برادرت چقدر فزیلت داره مکانت داره جایگاه داره اخوّت و برادری نزل خیلی با ارزشه یک از پر ارزش و پرفضیلته انسان جهنمی میشه چون در تا دیگر دیگه داریم فرما تعالی سر میهما لم يجتمع في الجنه ابدا هرگز در بهش با هم دیگه جمع نمیشن اینا جاشون دیگه بهش نیست بعد انسان عبرت بگیره و درس بگیره از این تذکرات و یاداوری های رسول الله صلی الله علیه و سلم و ان سلم علیه فابى ان يقبل تسليمه و سلامه حالا یکیشون میخواد صلح رو آشتی رو برقرار بکنه میاد سلام میکنه ولی که اون طرف مقابل قبول نمیکنه جواب سلامشون نمیده رد عليه الملکی فرشته جوابش میده جواب سلامش میده بدون سلامت ردخور نداره فرشته جوابت میده و اون عقوبتی که گذاشته شده برای اون ده نفر تو خودت رو نجات میدی با جواب اون جواب سلامی که اون فرشته بهت میده تو آغاز کردی مصالحه ولی که اون نخواست اون هست که شیطان جوابش میده و رد على الاخر الشیطان اون کسی که صلح را پذیره، آشتی را نمی پذیره، شیطان است که جوابش میده. اون شخص است که مستحق جهنمه، ولی تو الله توبتو و می پذیره، مادامی که دنبالی و سعی و تلاش میکنی برای آشتی کردن و صلح برقرار کردن. قال المؤلف رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف غضبك ورضاك قالت قلت وكيف تعرف ذلك يا رسول الله قال إنك إذا كنت راضية قلت بلا ورب محمد وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم قالت قلت أجلست أهاجر إلا اسمك سيسادة وزهومين حديث أز أمونين عائشة رضي الله عنه كم رسول الله صلى الله عليه وسلم فارمودا روزي بمان إني لا أعرف غضبك ورضاك من مدنمت كموك أزمن رحتي وكموك أزمن روزي كموك بارمان خاشقيني وكموك روزي قالت قلت وكيف شكنا مفهمي يا رسول الله كيف تعرف ذلك يا رسول الله هس مفهمي شن ام عاشی از خودش مطمئنه بروش نمیاره رسول الله الله علیه برنجونه از شکل و قیافش که نفهمیده از خودش مطمئنه بروش نیورده اون موقعی که ناراحت قال انك اذا كنت راضیه گفتی بلا و رب محمد از حرف این تشخیصو دادم وقتی که از من راضی خوشنودی دلت خوشه میگی بلا و رب محمد قسم به محمد اسم منو میاری بر سر زبونت و اذا كنت ساخطه وقتی که ناراحتی قلتی لا و رب به ابراهیم نه به پروردگار ابراهیم اسم ابراهیم پدرم رو میاری به جد انسان رو هر چقدر به بالا باشه پدر گفته میشه پدرت پدر بزرگش پدر و آخر قالت امون عاشه میگه قلت و عجر راست میگی لست و هاجر الله اسم کنی تو خشم فقط اسم تو رو نمیبرم یعنی فقط اسم تو حج کردن نه در تعامل نه در رفتار نمیخواد رسول الله رسول الله از برن ج حسن تعامل رفتار عمومی عایشه هست. و از یک طرف دیگر خواسته به رسول الله صلی الله علیه و آله ناراحتیش رو برسونه از اون چیزی که ناراحت شده زن اجازه نداره روی گردان بشه از شوهرش ترش رو بشه در منزل زنی نیست که شب پشت به شوهرش میخوابه روشو میگردونه از شوهرش مگر اینکه تا صبح فرشته لعنتش بکنه که چرا اون فرشته از بهش از همسران اون مرد و صبح لعنتش میکنه که چرا ما رو رنجوندی توبیخه بر اون زنانی که رویگردان میشن از شوهرشون اون احادیث رویگردانی دوتا برادر از هم دیگه اینجا رویگردانی زن و شوهر بر حذر باشن نهایت اون نارضایتی که میخوای ابراز بکنی ای زن مثل اومین المؤمنین عایشه با لفظت بر رسولک ناراحتی برود نیار رسول الله صلی الله علیه و از زنان بهشتی زنی را یاد میکنه که شوهر مقصره ولی دست به دست شوهرش میذاره میگه من نمیخوام چشمام نمیبندم تا اینکه از من راضی و خوشنود باشی اینا همه احادیث در تشویق مصالحه هست چه بین زن و شوهر و چه بین دو دوست و چه بین دوتا برادر تنی و خواهر تنی و اصول دلالت های این روایت و این حدیث اینه که مونا عایشه هم میرنجیدن با ترک کردن اسم رسول الله صلی الله علیه و سلم اینطوری نبود که یعنی از خوشحالی باشه از عمد باشه بشره خشگی میشه ناراحت میشه در اون لحظه خشم نهایت تلاشش رو داره که طرف مقابل از اون خشمش نفهمه به خاطر همین میگه از کجا فهمیدی یا رسول الله که من خشگی شدم میگه در فلان کلمه در یک کلمه به جای رب محمد گفتی رب ابراهیم قسم نادری نیست قسم درستی ولی به جای محمد صلی الله علیه و سلام ابراهیم هر دو مکرمه نزد الله بس این شوهرش تره. این درد رنجشه برای خود اومنین عایشه با اون خشمش و پیش میاد خوستن در زندگی چند همسری زنه در خیره شاید به غیرتش بر بخوره و الی آخر سبحانکاللہ بحمدک سبحان الله و صلی اللہ و محمد و آل محمد